حکایت سرهنگزاده ای را بر در سرای اغلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت، هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناسیه او پیدا، بالای سرش زهوشمندی میتافت ستاره بلندی، فلجمره مقبول سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت و خردمندان گفتند توانگری به هنر است به مال و بزرگی به عقل به ساد. ابنای جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بیفایده نمودند، دشمن چه زند چو مهربان باشد دوست، ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست، گفت در سایه دولت خداوند دام او همگنان را راضی کردم مگر حسود را که راضی نمی شود الا به زبال نعمت من، و اقبال و دولت خداوند باد توانمون که نیازارمن درون کسی حسود را چه کنم کوز خود به رنج درست بمیر تا برهی ای حسود که رنجی است که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست شوربختان به آرزو خواهند، مقبلان را زبال نعمت و جا، گر نبیند به روز شب پره چشم، چشمه آفتاب را چگناه، راست خواهی هزار چشم چنان، کور بهتر که آفتاب سیاه.